هر که با داناتر از خود بحث کند تا بدانند که داناست، بدانند که نادان است. چون در آید مهستوی به سخن گرچه بهدانی اعتراض مکن.